70ین عادت ضد تنبلی. چارش سی روزه بهانه که از میان می رود. فعلا وقتش را ندارم. تا بد اینجا یک کار 22 عادت ضد تنبلی را با یکدیگر مرور کردیم. اما بخش مشکل کار آنجاست که راهی برای اینکه همه این عادت را یک جا در خود ایجاد کنید وجود ندارد. اگر سعی کنید چنین کاری را یک روزه انجام دهید، دوچار حس استیصال میشوید می که این خود به ناامیدی و شکست می انجامد پرورش این عادتها به مانند دو استقامت است و نه دو سرعت چندین سال طول کشیده تا عادت به طبیق انداختن کارها در شما شکل بگیرد پس برای از میان بردن آن به دنبال راه حلی یک شبه نباشید اغلب گفته می شود که پرورش دادن هر عادت جدید 21 روز طول می کشد اما من سازواری ایجاد هر عادت در یک ماه را بیشتر میپسندم. و شما را هم تشویق می کنم تا هر روز یک عادت را در خودتان پرورش دهید اجرای این عادت چالش سییروز زمانی کارا می شود که آن را به صورت پیوسته انجام دهید. برای همین هم هست که من انجام این موارد را ماهی یک بار به شما توصیه می کنم یک. یک عادت ضد تنبلی که فکر می کنید بیشترین سود را به حال شما دارد انتخاب کنید. دو یک برنامه روزانه برای چگونگی پرورش این عادت در خودتان بریزید. سه انتظار موانعی که در کار شما پیش می آیند را داشته باشید و برای مدیریت آنها نیز برنامه ریزی کنید. چهار در پایان ماه عادتی که برگزیده اید را بدین صورت تحلیل کنید. آیا این عادت کارا بود ؟ از آنچه آموختید؟ چگونه می توانید آن را پیشرفت دهید؟ آیا به انجام آن ادامه می دهید ؟ 5. ماه بعد بر پایه آنچه آموخته و انجام داده اید یک عادت دیگر را برگزینید و به همین ترتیب ادامه دهید. من از عادت چالش سی روزه به مدت یک سال استفاده کردم و امروز صادقانه می گویم که این کار به من کمک کرده؟ تا چندین موفقیت بزرگ در زندگی حرفه‌ای و شخصیم به دست بیاورم شما هم همین امروز جالب‌ترین عادت ضد تنبلی که در این کتاب دیدید را انتخاب کنید و دست به کار چالش سیروزه شوید